چرا فتواه مراجع تقلید در بعضی از موارد احکام متفاوت است مگر احکام سلیقی می باشد و در هر صورت با وجود تفاوت های احکام توسط مراجع تقلید عمل تمام مقلدین به فتواه مراجع تقلید خودشان سعی و قابل قبول می باشد چرا این فتاوا به صورت قانونی است؟ این جمعه من گاهی پاس دادم خدمت دوستان عزیز مجموعی اون چه بانوان تفاوت فتواه می مگر چند مورد در میان هزاران حکم اسلامی؟ یعنی شما در مورد تا 5000 حکم دارید در فقه آیا 50 تا بیشتر میشه بنداشت در اختلاف این کجاست اختلاف سلیقه‌ایه اصلا سلیقه نیست اینجا شما وقتی اختلاف نظر دو تا صاحب نظر رو در یه رشته علمی در یه تخصص خاص پزشکی می‌بینید سلیقشونه یا انتخاب علمی‌شونه یا فقیه از این نص این استنباط رو میکنه به سلیقه‌ش ربطی نداره فاطه سلیغه رو بود مگه این فقد سلیغه کسی رو سلیغش رفتار کنه. به اصلابات علمی شه. من در فقیر نگاه میکنم این نظرم اصلاباتم از این آیه شریفه و این سخن محصوم اینه. من این برداشت و شعر به من اجازه این برداشت داده. این آزادی اندیشه منه. نمیتونم بفهمم بعد بگم من مثل آقای ایکس میخوام بفهمم. چون یکی باشه. و فهم من اینه لان شدم، کور شدم، کر شدم ببخشید، لیک مهان هست که من خل شدم من امون فهم خودم رو دارم دیگه برخواه نمیتونم فهم با کسی عوض کنم با اسلامی رو اجازه میده من فهم خودم رو داشته باشم مشکلی نیست که در اینجا بحث سنیغه نیست جان برادر بحث استنبات است. و موارد اختلاف هم براخرین اینها فوق شد سر و پا نگاه با کنیم بگر چقدر هم نیشن. و در دیه